اجازه بدین؟ دوستان عزیز اولا محبت بکن در رعایت هجاب چه حالا خانمها چه آقایان رعایت شون اسلامی محبت بکنن با ما همکاری داشته باشند این لطف رو حتما چه در این جلسه چه در همه جلساتمون این محبت رو همه دوستان عزیز با ما داشته باشند بحثی رو که میخوایم شروع بکنیم از اینجا به بعد میخوایم کالبوت های مختلف رو مورد شناسایی قرار بدیم و خب حالا از بررسی این کالبوت ها منظور داریم که شناخت بیشتر با ابعاد بوجودی خودمون هست برای اینکه یکی از این کالبوت ها رو مورد بررسی قرار بدیم قبل از اون که این صحبت رو بکنیم چند تا سوال مطرح بکنیم و ضمن این سوالات بپردازیم به, به بررسی کالبوت مختلف و خب از اونام حتما استفاده داریم و شناختهایی بدست به دست میاریم. خب با طرح یک سوال بریم به این مسئله برسیم. در دنیای علم مغز رو مانند یک کامپیوتر یا یک ابر رایانه در نظر میگیرند. و خب میدونیم یک رایانه یک کامپیوتر برنامههایی رو بش میدن و برنامه هایی رو ازش میخوان. تا برنامه به اون ندن برنامه ای هم چیه؟ نمیشه ازش گرفت. حالا این کامپیوتر به یک اپراتور هم نیاز داره که بدونه بیاد این برنامه رو بده و بعد بدون برنامه ها کجا ریخته شدن چه ریخته شدن و چطوری؟ به چه شکلی میتونه از این برنامه ها استفاده بکنه پردازش بکنه و این اپراتور رو میخواد اگر مغز ما یک ابر رایانه است اپراتورش کجاست یعنی بخشی که میدونه اطلاعات کجا داده از کجا باید درش بیاره و خیلی از مسائل دیگه این کجاست حالا ما سیستم بدن رو بیایم اون بخشش که به مرز مرود میشه بخش اوتوماسیونی داره که سیستمای اوتوماسیون بدن رو کنترل میکنه مثل ضربان قدر، تنفس، پهاش خون، فشار خون، تربیه خون، قند خون کلا دیدن هامون مسائل منو همین ها سنسوری، سنسور های داخلی و بیرونی هست و بعد یه سیستم اوتوماسیون اما یه حالته یک مسائلی هست که در واقع بعضا تمایل ما به رفتن به کمال یا زده کمال به سمت وحدت یا به سمت کسرات اینو مغز چجوری اپراتوری میکنه خب و اگر حالا بیم از مغز بریم سمت یک نورون رو در واقع یک سلول عصبی رو زیر نظر بگیریم و در اینجا این نورون رو زیر نظر بگیریم در واقع یک توضیح کننده جریان الکتریک هست یک سلول عصبی صرفا توضیح کننده جریان الکتریک هست مثل یک کنتاکتور برق میمونه که در این سیناپس یا به طور کلی در برودی و خروجی ها با, با کنش به نام اسیدرکولین این کنتاکت ها هادی میشه یا آیق میشه و جریان الکتریک از اون عبور میکنه و با عبور جریان برق از این کنتاکت و اتصال اونها به سیستم های سنسوری که یا حواس پنجگانه مدار فرمان برق تکمیل میشه و این سیستم اوتوماسیون کار میکنه اما آیا این کنتاکتور برق که مثلا عاشق میشه این کنتاکتور برق که تصمیم میگیره امشب جوجه کباب بخوره یا نمیدونم نونو پنیر بخوره اینه خب سیستم تفکریه ما که ببین چقدر متغیر داره و ما از این وقت بریم از این بریم دلمون اینو رو میخواد دلمون این کنتاکتر برقه که میگه ما دلمون چی میخواد یا نه و یک بحث دیگه خود این نرون از کجا تصمیم میگیره که کدوم کنتاکتو باز کنه یا ببنده مغز این کجاست اپراتور این کجاست اپراتور میخواد یا نه میخواد. همینجوری دایمی که این کانتاکت‌ها باز و بسته که نمی‌شه که اونا که دوستان که با طراحی مدار فرمان برق آشنایی دارن چند نفر داریم خب دوستانی که با طراحی مدار فرمان برق آشنایی دارن می‌دونن من چی میگم و این کانتاکت‌ها باز و بسته 0 و 1 این توی یک مدار فرمان برق چه جوری عمل میکنه؟ حالا بگذاریم البته این نورون روی سیستم فاز لوژیک در واقع کار میکنه یعنی خیلی پیچیده‌تر از اینی که ما الان داریم صحبت میکنیم ولی برای اینکه بحث ساده بشه از بازی لاجیک صرفا به یک مدار فرمان برق ساده داریم اکتفا میکنیم اپراتور این کجاست؟ از کجا تصمیم میگیره کدوم رو باز کنه کدوم رو ببنده و مغزش کجاست؟ تا حالا مغزی هم براش پیدا نشده خب این یه جواب جوابم نمیخوایم خب جوابم نمیخوایم چون اینا از بحث های تخصصی دوره فراب پزشکیه که برای پزشکان روانپزشکان اینا قبلا گذاشتیم امیدواریم که به زودی هم بذاریم و باز پزشکان و روان پزشکان و داروسازان اینا بتونن تو این دورا شرکت کنند تو بحث های تخصصی که داریم. خب این یک موضوع. موضوع دیگه رو با هم عنوان سآل می کنیم. یه سوال دیگه. شما میدونید در یک تجاربی مثلا در هیپروتیز، میان با استفاده از تلقین، فرضن بخشی از دست رو ساعد رو مثلا فرظ کنید که بی‌حس میکنند خب حالا سوژه ما این بخش دستش حس داره اینجا حس نداره اینجا حس داره سعال اینه با توجه اینکه این سیستم عصبی سالمه چطوری میشه اینجا حس داشته باشه این وسط مابین این دو تا تیکه حس نداشته باشه بی حس باشه خب بازم جواب نمیخوان چون جواب نداره سوال دیگه میکنیم سوال دیگه میکنیم با در آزمایش شناخته شده یه هیپنوتیز میان به سوژه تلقین سوژه رو میبرن در حالت هیپنوز و به او تلقین میکنن که ما الان یه آهن داغ یه تیکه آهن داغ میذاریم کف دسته اما در عمل یه تیکه یخ میذارن کف دست سوژه چه اتفاقی میفته <تصفيق> کف دستش میگیم چه احساسی داره میگه سوختم سوختم سوختم سوختم آهن رو میندازه و بعد کف دستش تاول زده در حالی که ما یه تیکه یخ گذاشتیم کف دست این سوژه چرا کف دستش سوخت سوال دیگه عکس این موضوع اتفاق میفته یعنی به سوژه میگن یه تیکه یخ خلا میذارم کف دسته اما یه تیکه آهن داغ میذارن و بعد میگن چی حساس میکنه میگه یخ زدم کف دستم یخ زد یخ زد یخ زد و بعد میدازدش و بعد شروع میکنه به کف دستشون هیچ تاولی هم نزده هیچ آثار سوختگی هم نیست دستش چیز میکنه و بعد با حالت عادی دستش گرم میشه به حالت عادی برمیکرده چرا؟ سوال دیگه در مورد بیماری بیمار فلج هیستریک، کاری هیستریک، کوری هیستریک. اعضا سالمه اما مثلا چشم نمیبینه. چرا عضوی که سالمه گزارش نداره همه چی سالمه. چرا اعضایی که سالمه ولی فلجه؟ چرا گوشی که سالمه نمیشنوه؟ حالا همه اینا برمیگرده به یک مجموعه ای که با هم دیگه میریم دنبال پاسخش. خب به یک بخشی میرسیم به نام کالبود ذهنی بررسی کالبد ذهنی جواب همین سوالات، به اضافه خیلی سوالات دیگری رو که در دنیا علم پاسخ نداره به ما میده خب از این بابتی که هم بررسی میکنیم هم باش کار داریم هم شناختایی که به دست میاریم خب اون اپراتوری که میخوایم راجب راجع به صحبت بکنیم این اپراتور کالبود ذهنی حالا ببینیم که چیه اولا که ما یک حافظه و آرشیو اطلاعات داریم جدا از مغز ما یک حافظه مغزی داریم هارد مغزی و یک حافظه داریم جدا از مغز که بعد از مرگ این حافظه کماکان زنده است خب کسانه که تجربه احزار رو دارن داشونو بلند کنن در این تجربه حافظه اون فرد متوفا آیا وجود داشت یا وجود نداشت دیدن که از بین نرفته بود در حالی که مغزش اون زیر خاک پوسیده ولی خودش حافظهش وجود داره یک بخش حافظه و آرشیو اطلاعات داریم که این حافظه و آرشیو اطلاعات از بین نمیره و اطلاعات فرد در اون باقی میمونه یک مدیریت حافظه داریم که از فایله مختلف اطلاعات بریده بریده بریده بریده رو چیکام میکنه؟ در میاره بیرون الان ما با هم صحبت میکنیم درسته؟ قصه های مختلف پیش میاد، یک جاش شعر میگیم باید این بره تو فایل اشعار یک جاش یه آیه از قرآن میگیم باید بره تو فایل مثلا آیات یک بحثشه بحث علمیه باید بره تو فایل علمی و بعد واژه به واژه باید کلمات و لغات چی بشه؟ انتخاب بشه یعنی انتخاب واجه ها. شما به یه تلفون بانک زنگ میزنید میگه که موجودی حساب شما مبلغ سه هزار و پلان و پلان, و پلان. به هر کدومیشو از یه جا داره میگیره یعنی یه جا پوسه باید اینا ردیف کنه باید بچینه پشت سر هم ما هم همینطوریم. حالا ما یه پیوستگی حرکات و گفتار داریم که برمیگرده به یه کاربود دیگمون که اونو با هم جلسه بعد جلسات بعد با هم صحبت میکنیم. خب در این صورت واجه به واجبه ما باید انتخاب کنیم اطلاعات بریده بریده رو بعد کنیم انتخاب کنیم حالا بعد از اینه که انتخاب کردیم مدیریت دیگری مدیریت چیدمان اطلاعات یعنی اطلاعات تیکه تیکه بریده بریده باید کنار هم قرار بده ازش یه فکری بسازه با هاش یه فکری ایجاد بکنه چیدمان اطلاعات اینم مدیریت میخواد بعضی تو این بخش این ضعیفه بعضی ها اون ضعیفه بعضی دوتاش ضعیفه بعضی دوتاش قویه حالا چرا چگونه؟ اینا رو صحبت میکنیم خب در این رابطه هر کدوم از این بخش خودشون ما جراهایی دارند و قضایه رو دنبال میکنن که پیدا کردن این اطلاعات به این سادگی که ما تصور میکنیم نیست و خب قضایه خاصی داره یک بخش دیگری داریم مدیریت سلول و بدن مدیریت سلول و بدن آناتومی خاصی داره در این آناتومی در واقع صد تریلیون انشعاب نامرئی به تمام سلول ها در واقع ما داریم همون چیزی که الان عکسشو میندازند ولی هنوز نمیدونند که این چه آناتومی داره یعنی در واقع تو عکسهایی که از ها و این می میندازن یه چیزی هست ولی نمیدونن دقیقا چیه و آناتومی چیه اما اگه اینو بتونم بزرگش کنن بعدن میبینن که صد تریلیون انشاها نامرئی نامری ما داریم و در این بخش توضیح شعور سلولی انجام میشه و شرح وظیفه تک تک سلول ها در این بخش انجام میشه خب به عنوان مثال در این مثالی که اینجا داشتیم که فرزن ساید دست بیهست شد این مدیریت متقاعد میشه خبری رو داره میگیره و متقاعد میشه که این بخش دست باید بی‌حس بشه متقاعد میشه لذا دستور میده به سلول های نایب تک تکشون دستور میده که درد رو گزارش نکنید در این موردی که آهن داغ گذاشتیم به اون گفتیم که یخ میذاریم ولی آهن داغ گذاشتیم این مدیریت متقاعد شده که ما داریم یخ میذاریم کف دستش لذا به سلول های کف دست دستور میده که شما واکنش در مقابل سرما رو نشون بدیم کاری نداره که اصلا در جران عمل شما دارید آهن داغ میذارید و در موردی که داریم به اون میگیم که آهن داغ میذاریم متقاعد شده که یک تیکه آهن داغ میذارن کف دست و به سلول های کف دست دستور واکنش در مقابل سوختگی رو داره میده اصلا کاری نداره که داره شما یخ میذارین لذا به محض اینکه با چیزی دست تماس پیدا میکنه آثار سوختگی یعنی اگه اینو بذاریم کف دست آثار سوختگی داره اگر یخ بذاریم همینطور و دستور اجرا دستور اجرا میشه درست شد؟ و جانم البته تا انتحاش بگم اگر انتحاش اگر نه خیلی عجل است بفرمایید. اجازه بدین مثالی که من زدم خدمتون شما یه یخ گذاشتیم ولی کف دست تاول میزنه تاول میزنه اکس و فیزیکی نشون میده شما یخ گذاشتیم ولی دست تاول یعنی آثار فیزیکی سوختگی. نه فقط حس کنه که کف دستش داره می‌سوزه. دست تاول میزنه درست یا درست نیست؟ دوستانه که با هیپنوتیزم باشنایی دارن درسته یا نه؟ خب، بسیار خب. حالا علائم در این خصوص حقیقتی هست من توضیحات بیشتر خدمتتونیدم ولی این شعر واقع است. یعنی چیز من نیست که من بگم. این مسئله هست ولی توضیحش نمیتونن بدن چرا. هیچ دلیل علمی براش نمیتونن ارائه بدن چرا؟ و اینجا با این نظریه، پردازی خودمون رو، تجاربی که داریم، اطلاعاتی که داریم، کاری ندارم که حالا باعث سر و کار داریم، این مطالبه رو داریم با همدیگه مورد بررسی قرار میدیم. حالا من در حاشیه رو بگم خدمتتون، شما ممکنه بگید که مثلا اون زمانی که گفتیم یخ میذاریم ولی آهنه داغ گذاشتیم، چرا کف دست نسوخت؟ درسته؟ آیا سلول میتونه حرارت آهنه و تحمل کنه؟ میتونه موجودات دریایی که از احماق 2500 متری البته اعماق بیشترش رو انو در دست کنند 2500 متری خارج میکنند چه حرارتی رو تحمل میکنند سلول های دریایی چه حرارت و فشاری رو تحمل میکنند همین سلوله همین ساختمانه اپتلیال، اندودرم، مزودرم، اکتودرم همین سلول در عمق 2500 متری خارج کردند شیف چه واجی حرارت زیاد تحمل میکنند، توجه میکنید کنید؟ بنابراین شرح وظیفه سلول تابعه از دستور مدیریتی و به هر این که وجود داره و نمیتونند توضیحش بدن توضیحش بکنن و در اینجا این, این مدیریتی که شرح وظیفه رو تعیین میکنه و تعریف میکنه شما نمیتونید منکر بشین. یه ایده رو آتیش را میرن. درسته یا نه؟ یه ایده رو آتیش فقط تمرین کردن کار نداریم. برنامهش هم همینه. یعنی اومدن، کار کردن، کار کردن، کار کردن ای رو که دادن اونجا شرطی شدن. شرط اینه که تا میگه‌لام پاهم میذارم روی یخ، پاشو میذاره رو آتیش، اون مکانیزم یخ زدن رو پیاده میکنه. مثل همین مثاله. و احساس یخ زدگی میکنه. یعنی رو آتیش راه را میره ولی احساس یخ زدگی داره میکنه این یه واقعیتیش که وجود داره و نمیتونیم انکارش بکنیم. خب. جناب دکتر سوالی داشتین؟ بله. حالا بنابر این ما به یک بحثی به یک بحثی میرسیم که بحث در واقع این مولکول وقتی توی بدن سواره توجه می‌کنی روی بدن سواره موضوعش فرق میکنه مگر اینکه بیایم بگیم ماهال ممکنه کسی رو آتیش را بره مگر اینکه بیایم بگیم اصلا اون واقعیت رو چیکار بکنیم منکر بشیم یا این تجربه رو که توی هیپنوتیزم هست بیایم چیکار کنیم بیایم بگیم اصلاً همچین چیزی نیست ولی خب واقعیت ثبت شده است درست شما دکتر شما تو زمینه هیپنوتیزم و اطلاعاتو من میدونم درین درسی درست نیست بله این کارو کردین خب نمیشه مگر اینکه اینجا متقاعد شده باشه که شما میتونید سیخ رد بکنید شما انجام دادید درسته دکتر بنابراین یا باید این واقعیت ها رو منکر بشیم یا باید بریم دنبال تئوریای نوین تئوریای نوین بحث قابلیت های انتباق شعوری رو مطرح میکنه در بدن موجود زنده توجه میکنید در بدن موجود زنده مسائلی میتونه از نقط نظر شعوری و این هوشمندی اتفاق بیفته که یک مولکول ساده حالا عالی معدنی چیزی اونو دیگه نداره ولی وقتی میاد اینجا جمع میشه ماجرای دیگه ایجاد میکنه یک مثال بزنم خب یه مثال بزنم یه دونه سلول بدن من به تنهایی آرزو سرش میشه چیه؟ به تنهایی آمال داره امید داره آرزو داره میفهمه شکست یه سلول بدن من میدونه؟ یه سلول مغز من میدونه ولی ست تریلیون که جمع میشه من اینجا چیه؟ من اینجا آمال دارم آرزو دارم هدف دارم عشق رو میفهمم درد درستی میفهمم درسته یا نه؟ بنابراین یه تئوریای رو برخورد میکنیم تئوری اجزا در تجرد تئوری اجزا در کامپوز فرق میکنه یه چیزی رو مجرد گیرش بیاریم یا یه چیزی رو در جمع گیرش بیاریم خیلی تفاوت میکنه و ما هم الان یکی از همین موضوع داریم استفاده میکنیم الان ما شعور فردیمون به ما ناتوانی رو میده میریم مشکل بیماری داریم نمیتونیم حلش کنیم اما شعور جمعمون هوشمندی جمعمون به ما امکانه امکان استفاده میده درست یا درست نیست پس ما یا باید به سمت های نوینی بیایم و این تئوریهاینوین و تست بکنیم هوش جمعی هوش فردی هوش سلول هوش زیرمجموعه سلول هوش دی ان ای هوش زیرمجموعه دی ان ای درست شد و بعد میبینیم که اون چیزی که جز نداره کل داره اون چیزی رو که جز اصلا اطلاعی ازش نمیتونه داشته باشه در کل داره حالا این مدیریت در واقع این قابلیت رو ما میبینیم که در عمل داره حالا در مورد موارد هیستریک که مثال زدیم مثال بزنم خدمتتون. خب ببینید یه نفر در مقابل با ناملایمات میگه که دیگه نشنبم آ دیگه نمیخوام بشنوم. یعنی چی؟ یعنی برخورد میدوند تو خونه از این چیزها زیاد میشه درسته؟ دیگه نشتبه دیگه نمیخواب بشتبه و کافیه که این مسئله رو که ما برخورد میکنیم با باهاش کافیه که اینجا فیلتر عقلی داریم از این بگذره و از چند تا نرم افزار بگذره و خلاصه برسه به اینجا برسه به اینجا این متقاعد شده مثل همون چیزه میمونه مثل همون تلقینه میمونه. اون ترغینم از ضمن فیلتر عقلی گذشته از فیلتر ناخودآگاهی گذشته رسیده به اون بخش اراده و اجرا و اینا که بعداً راجع بهش صحبت می‌کنیم بعد میاد اینجا اجرا میشه حالا این فردم گفته که دیگه نمیخوام بشنوام ما یه حرف دیگه زده از اون فیلترها عبور بکنه میاد به اینجا اینجا دستور میده که خب هیچ پیام شنیداری مخابره نشه مثل همونجا که گفت هیچ دردی مخابره نشه بعد دچار کریه هیستریک میشه بعد دیگه اینجا گزارش نمیده همه چی سالمه ولی سلولهای های چیزی رو گزارش نمیدن مثل همین ماجره یا مثلا میگیم که دیگه نبینم و دیگه نمیخوام ببینم خب تو خونه تو اینجا تو سر کار خب دوباره از این سلسله مراتب و اون فیلترها عبور کنه به اینجا برسه بعد این مدیریت دستور میده که دیگه هیچ پیام دیداری مخابره نشه لذا فرد سالمه و چشمش نمیبینه و در موارد فلج و اینها مثلا یک خانم میگه چقدر من زرد بشورم دیگه نمیخوام زرد بشورم لذا کافی از اون سیزا بگذاره میاد اینجا دفنه دستش از کار افتاده و بلج هیستریک اتفاق افتاده یا فرد میگه که دیگه نمیتونم این راهو برم حالا میخواب سر کار سر کار درگیری اعصاب به دیگه قادر نیستم برم دیگه نمیخوام برم این دستور میده که خب این دیگه نمیخواد بره و دستور میده که از یه جایی ارسال اطلاعات چه بشه بنابراین یه دفه که از کمر به پایین طرف فلج شد و فلج هیستریک اتفاق افتاد خب حالا توی این رابطه اینا رو داشته باشیم یکی دیگه از این کارهایی که انجام میده گفتیم شر وظیفه سلول مثلا هر سلولی برنامه تکثیر چجوریه خب تکثیرش مسئله مختلفهش چگونه است؟ و ممکن یک سلولی با دستور اشتباه دچار پرکاری کمکاری اینا بشه اینا رو داشته باشیم خب پس شعور سلولی جاری میشه در بدن ما حالا در یک مواردی قرار انتقال عضوی از بدنی به بدن دیگه سورت بگیره خب از بدنی انتقال حتی انتقال خون صورت بگیره بدنی که عضوی میخواد ازش انتقال پیدا بکنه یک شعوری داره خب بدنی که عضوی رو میخواد بگیره یک شعور دیگه ای رو داره میان تمام آزمایش ها رو انجام میدن آزمایش خون غیره فلان بساری حرف رو میکنن میبینن که هیچ اشکال نباید وجود داشته باشه از نظر انتقال عضو، اما بعد از اینه که اوزو انتقال میدن میبینن که پس زده شد علت پس زدگی در اینجا میمونه چی؟ عدم سازش شعوری عدم همفازی شعور سلولی و این عدم همفازی باعث پس زدن اوز میشه حتی توی انتقال خونه ساده ممکنه تا چند روز فرد نوسان های مختلفی رو متوجه بشه و یه خورده زمان میخواد تا این بعدن حالا خونه و گردش میکنه این دامه همفازی ایجاد بشه و اون حالت برطرف بشه آنها بر این حالت رو تجربه کردن توی بله انتقال خون توی این مسائل بله خب در این صورت این ها داره بینشایی به ما میده خب یه بینشایی رو به ما میده یکی اینی که چرا دستور اشتباه صادر میشه به با عنوان مثال یکی اینکه که توی انتقال اعضا چرا عض پس زده میشه و تعجب حتی بعضی مواقع در عمل بایپس میبینید از رگ پای خود فرد میگیرن عمل بای پس رو انجام میدن اما بازم پس زده میشه خب علت دوباره میبینیم که در این بدن توضیح شعور سلولی هست ولی شعور سلولی در نایه پا با این نایه قلب متفاوته مخصوصا در افراد پریشان و احمال و در افراد دپرس و افراد که مشکل دارن اختلاف توضیح شعور بدنیشون با هم متفاوته همخونی نداره یعنی این مدیریته یک چیز هجومجیست توی این بدن و جا به جاش مسائلش مختلفه با هم تفاوت داره لذا در این مورد در این موارد با همفاظ کردن شعور سلولی اطریق هم که ارتباط برقرار کنیم ارتباط که برقرار بکنیم خصوصا بعد از عمل، البته میتونه هم قبلش باشه هم بعدش این فازی، چی میشه؟ این همفازی شعوری انجام میشه و انتقال با موفقیت بیشتری در واقع میتونه صورت بگیره و امکان پس زدن قضد کاهش پیدا بکنه درست شد؟ تو اینجا اگه سوالی هست که خسته کننده نموش من یک ریز حرف زده باشم اگه سوالی هست یکی دو تا سوال بکنید تا من بقیه‌شو ادامه بدم. چیانم؟ فقط میکروفون رو اجازه بدید من بدم خدمتتون. دارین بفرمایید. ببخشید. قانون دوست در مورد فشار وارد در یک نقطه عیناً به تمام نقاط منتقل پیدا می‌کنه. ما اینجا گفتیم که یه تک سلولی داریم، یک فردی داریم بعد جمعی داریم. توجه می‌کنید؟ این تردی ما به تنهایی عمل نمیکنه بعد جمع که میشه میتونیم چکار بکنیم؟ پرادرمانی رو کامل بکنیم بلی بلی. این نظر شما با این برنامه عرش میدوست چی هستش؟ ما بیاییم یه قسمتی رو بیهست میکنیم ولی آیا اینو از مدار داریم خارجش میکنی؟ مگه این عوضی از اون نیستش؟ بله عشقرم شما نمیتونی از مدار خارجش کنید از مدار نمیدونی خارجش کنی این تو این سلسله سیستم عصبی ما در اون راستا قرار داره اگه اینجا حس بکنه باید اینجا هم حس بکنه اگه اینجا حس نکنه اینجا هم نباید حس کنه یعنی باید بگیم از اینجا به پایین قطع شد ولی نمیتونیم بگیم اینجا قطع اینجا وصله درسته یا نه بله شما کف دست و یه تیکه آهن بذاری همه بعدا باید بسوزه ببینید ولی اجازه بدین وجود ما داره احساس میکنی اینجا داره میسوزه ولی اینجا داره میسوزه و اثر تاول اینجا قانون عرش میدوست در مورد مایعات سیالات پس قانون شعور کاملا متفاوته و قانون هوشمندی و شعور کاملا فرق میکنه دقت بیکنید تاثیر قانون شعور کاملا با مثلی قانون عرش میدوش کاملا متفاوته و برا اصلا حتی هیچ چیزی هم نداره حتی هیچ سنخیتی هم نداره یعنی قیاسشون مسائلشون اصلا شعور نه ماده است و نه انرژی است توجه برمودین هوش شعور اینا نه ماده هستند نه انرژی هستند بنابراین قوانینی که در مورد ماده و انرژی صدق میکنه در مورد شعور صدق نمیکنه خواهش میکنم. کنم. خیلی ببخشید. حافظه و آرشیو اطلاعات که فرمودین جدا از مغز بعد از مرکم زنده هست. آیا این آرشیف آپدیت هم میشه؟ یه خورده بلندتر صحبت بکنیم لطفا. ارز... عرض کردم که حافظه و آرشیو اطلاعات جدا از مغز که بعد از مرگ فرمودین زنده است. و به اصلاح از بین نمیره میخواستم ببینم این آرشیو آپدیت هم میشه؟ ببینید این مسئله آرشیوی که اینجا دا وجود تو بس داره تو بحث روح فرمودین چون من احصار روح که کردم دیدم که از اطلاعاتی که بعد از مرگ اتفاق افتاده اطلاع دارم میخواستم ببینم این تا چه حد میتونه؟ اطلاعاتی که بعد از مرگ اتفاق میفته؟ بله. بله خب بله در اون طرف حالا این اثبات این موضوع تو دوره تجسد فای یعنی کسایی که تجسد فای کار کرده باشن میدونن که روح وجود داره کاربود ذهنشون هست و اطلاعاتشون هست و ادامه خواسته های زمینی هست و همه در اونجا در واقع برامون میتونه اثبات بشه اما حالا در اونجا که قرار دارن چون مکان نیست به اطلاعات جدید هم دسترسی پیدا میکنن به اطلاعات جدید دسترسی دارن چون وابسته به مکان نیستن بنابراین بله در اونجا هم دوباره ادامه هست خیر از اطلاعات خودشون مسائل دیگه رو هم دسترسی پیدا میکنن البته مورد به مورد فرق میکنن مورد به مورد کاملا تفاوت پیدا بله خب بفرمایید در مورد پیوند اعضا فرمودید اون از یک شعوری و یه خود بلندتر صحبت بفرمایید بهتره دوستان مورد پیوند اعضا از بله سوالم اینه که اگر قبل از اینکه عمل پیوند انجام بشه با توجه به توضیحی که شما فرمودید اگر مدتی اون عضو دهنده و اون گیرنده با هم برخورد هایی داشته باشند و سعی بکنند که به صلاح حالا هم یا حالا اسم اسمش هر چی که بذاریم هم نزدیک بشن میتونه کمک بشه یا این؟ نه تقریبا بگم که منتفی است. چون مثلا فرض کنید که ده ها هم که با هم باشن توجه می دهها ده ها هم که با هم باشن باز این اتفاق اونطور که تعریف ما هست نه نمیفته و این هم واسه شعوری خودش بحث خاصیه بحث جدایی نه به هم فکری ارتباطی نداره خب اگر چیزی نیست حالا بریم یه شد بریم ادامه موضوع چرا اگر که حالا اینطور باشه پس در یک سری از سلطنت ها حالا یه سری و اصولاً تمام نقایسی که در وجود ما صورت میگیره یک سری دستور اشتباه صادر شده. دستورات اشتباهی صادر میشه و این مدیریت در یک جایی دوچار اشکالاتی میشه که اون اشکالات باعث میشه از اشتباهی صادر بکن. خب کلن میبینیم که این بخش خودش کال بوده ذهنی که این مسئله رو توضیح میکنه خودش دارای بخش است که برای ادامه کارش به انرژی نیاز داره. انرژی صرف میکنه. و ما بعضی از روزها میبینیم که در آخر وقت دیگه انرژی ذهنی ما تموم شده. ااز شدیم و کشش نداریم مثل میگیم دیگه نمیکشیم. درست شد یا نه. بنابراین ضمن این که اینجا در واقع بخشی است که شعور رو توضیح میکنه خب شرح وظیفه میده مثل ما که غذا میخوریم ولی فکر ساه میکنیم. کنیم. فکر ما مادس یا انرژی هیچ کدوم. آثار فیزیکی داره یعنی الکترون رو شما، بذارید می‌بینید که امواج میده ولی خود اندیشه جنسش چیه؟ هوش جنسش چیه؟ ما یک مکانیزمی هستیم، قضا مصرف می‌کنیم ولی محصولمون یه چیزیست که در واقع نه اینه نه در مورد ذهنم همینطوره. خودش انرژی مصرف میکنه ولی محصولش شرح وظیفه و برنامه است برای سلول و توزیع شعور سلولی و چیزی رو در واقع چیزی رو انتقال میده یه چیزی رو صرف انتقال میده حالا این مدیریت تحت شرایط مختلفی دچار نقصان میشه دچار نقصانهایی میشه این نقصانها به نقصانهای فردی و نقصانهای جمعی اگر بیام تقسیمش بکنیم شاید بتونیم این نزیه بهتر بگیریم در مسئله فردی ما درصد قابل توجهی از انرژی ذهنیمون رو تلف میکنیم، اتلاف انرژی ذهنی داریم. مثال بزنم، اگر ما در طول بیش ساعتی که بی داریم روکی روکه میکنیم، مثلا از یک معبر عبور میکنیم، از یک پیاده عبور ابور میکنیم، افرادی رو که از مقابل ما عبور میکنند، همه رو بلا استثناء یک پردازشی روشون انجام میدیم. میگیم کوتاه، بلند، چاق، لاغر، زشت، زیباس، کوتاه. و خوش لباسه بد لباسه و و تمامو چگاه میکنیم یک پردازشی روشون انجام میدیم خب این پردازش به درد ما میخوره به هیچ دردمون نمیخوره و داریم اطلاف انرژی ذهنی رو دامن میزنیم هیچ کمکی به ما نمیکنه این پردازش به کمک ما نمیاد بنابراین چقدر از اشتغالات ذهنی ما همینطوری بی خود و بی ربطه؟ خیلی زیاد. حالا ممکنه بگن یه جای شنیده باشیم که ما از یک درصد توان مغزیمون استفاده میکنیم. ولی منظورشون همین ذهنی هست. یعنی منظوری که 99 درصد توان اون هدر میره. حالا مغزمون که خیلی قدرتمنده و قابلیت پردازش های مختلفی داره که خو خیلی از بخشاش، به کار گرفته نشده اونم دلیل داره چون خیلی از بخشهاش برای ترجمه متافیزیکه که ما هنوز به کار نگرفتیم مثلا خیلی از چیزها رو شما الان رنگهایی رو شما تجربه کردین که روز زمین اون رنگها نیست چند نفر داریم؟ رنگهایی که روز زمین تا حالا ندیدیم خب این از کجا کشفش کردیم چیزی که روز زمین نیست از کجا کشف شده بخش های جدیدی از مغز شما detect الان وارد مدار شده و اون رنگ ها رو چیکار کرده برای شما ترجمه کرده و شما میدونید که هر چی میخواد این رنگ رو بگید چیه نمیتونید این تیف رنگی رو شناسایی بکنید خب خیلی از حالات اشراقی و ادراکی هست که هنوز ما تجربه نکردیم ولی مغز سنسورشو داره تعریف شده، ها ریخته شده ولی ما هنوز استفاده نکردیم و با رفتن توی حالات اشراق و ادراک و مسائل جدید هی از این بخشا چی میشه؟ میاد تو مدار و فعال میشه. خب حالا وقتی که ما اینجوری انرژی ذهنیمون رو هدر میدیم، وضعیت این مدیر مثل یک مدیر میشه که مدیر سازمانی که وقتی میون سر کارش چقدر پرونده میشینن رو میزش که اینا مال همسایا ها این برمونن که امروز چی خوردن چی, چی کار کردن کی رفته خونهشون کی اومده خونهشون این هم مال همسایه روبرومونه این هم مال اینجا هم مال خوب همچین مدیری دیگه نمیتونه سازمان خودشو مدیریت بکنه درسته؟ در نتیجه دوچار نقصان و اشتباه میشه دلیل دیگری برای این قضیه وجود داره که دلیل تاریخی است خب قبل از اینکه اینو بگیم یه ارتباط اسکن با شعور کیانی رو با هم تجربه بکنیم دوباره ارتباطی بگیریم بفرمایید میکروفون رو اگه اونجا هست بفرمایید روشن کنید بفرمایید بله حسن مدیت سلول بدن که شما فرمودین ما میتونیم با استفاده از شعور خودمون در اختیار خودمون بگیریم متوجه نشدم اونه که کارو مدیریت سلول و بدن بله یا مدیریت حافظه مدیریت فکری خب ما میتونیم با استفاده از همین شعوری که شما میفرماییم در اختیار خودمون بگیریم این مدیریتو در اختیار خودمون بگیریم بله. خب ببینید در یک سری از این کارا تقریبا اینجوری شده بود دیگه ولی که هم به طور کلی در شرایط خاصی افراد به اون فیلتر عقلی و فیلتر زمین ناخداگاه و از همین اینا تونستیم عبور کنیم شرایط خاصی به اینجا نفوذ کردیم یک درصد کمتر افراد تلقیم پذیرشون در این حد است که همچون کاری بکنیم شاید یک درصد هم کمتره بعد نه در همه مواقع نه در همه مسائل بنابراین انظره شدن بله شده که اون کار انجام شده ولی به طور کلی این یک موضوعی که لوط کنید بلنده است شما میفرمایید که کسی که فرد دیگری رو هیپنوتیزم میکنه بهشون القا میکنه که مثلا رو حس نکن گرما رو سرمای اسمون یا سرما رو گرما اخا اینا خود ما میتونیم این کارو واسه خودمون انجام خود هیپنوتیزم خب همینه دیگه همین قضیه رو خود اجرا میشه دیگه همین مساله شما رو خودتون میشه خود هیپنوتیزم فرق نمیکنه خود هیپنوتیزم با دیگر هیپنوتیزم فرق نمیکنه همینه مکانیزمش همینه خب ارتباط برقرار بکنیم استاد من یه سوالی داشتم چیانم بفرمایید آدم میتونه توی شعور ملکولی هم دخل و تصرف داشته باشه؟ بله دخل. بله میتونه الان عکس که از مولکول آب میشه خب خطاب به مولکول آب چیزایی گفته میشه و واکنش های اون مولکول آب نشون میده که عکس کردن دیگه فکر کنم این دوستان ها رو میدونن امروزه در واقع خیلی پیشرفت‌های خوبی حاصل شده همین تأثیرات شعوری خوشبختانه عکس برداره شده و همه دنیا ازش مطلع شدن تأثیرات شعوری چه روی مواد بی جان چه روی گیاهان چه روی حیوانات این مسئله تأثیراتش آشکار شده و شما روی گیاه و حیوان هم میتونید کار بکنید حالا این دوام دوستان کار کردند یا کار نکردند برای بله میتونن تجربه بکنن. پس چرا خب حالا بعضی از افراد مثل مثلا آقای دیوید بلین خیلی خارق عادت طرح میشد، تبلیغ میشه. مثلا ایشون یه خنجر رو پرتاب کرد از وسط یه آینه بدون اینکه تغییری تو آینه ایجاد کنه رد شد. بله، کنم شما دو دور بعد، دور بعد خب خیلی کارا در دنیا صورت میگیره که همشو در دو دسته عرفان توضیح دادیم دیگه چی؟ کمال <مال> و قدرت شما شناخت کمال، شناخت قدرت شما راجبه چی میخواد چیز بکنید؟ بله اینا مسئله مختلفی داره و همش امکان پذیره حالا کاری نداریم بعضی این موقعها اینا خب فرض میکنیم درسته فرض میکنیم که هیچ چیزی حقیه نمیدونم تریکیه چیزی تو کار نباشه ولی خب هست میشه امکان پذیره اما از اینا دو دو تا وادی مختلفه اینجا اصلا همچی بحثی رو مورد بررسی قرار نمیده و در اینجا هم هیچو صحبتی نیست بله حالا من متوجه نشدم که منظورتون از این بخش دوم چی بود منظورم اینه که میشه عملیه فز میده مثلا به بشر یعنی خدا چجوری جوری مجوز میده به بشر که تو قوانین فیزیکی و متافیزیک خلق کرده ببینید ما متافیزیک نداریم متافیزیک اون چیزی رو که ما اطلاعات راجبش نداریم میگیم متافیزیک اون رو که سرمون در نمیره و علممون اجازه نمیده نپوز کنیم میگیم متافیزیک اما متافیزیک آیا وجود داره مثلا تا 50 سال پیش دیدن حالهای های دوره بدن جز چیزهای خرافی بود اما الان علم از اکش برداری میکنه اکش برداری خب و داره اینا رو میکنه تازه پردازش های بسیار دقیقی هم ازش به دست اومده خب قبلا تو متافیزیک بود الان تو فیزیکه تا سی سال قبل میگفتن تپ سوزنی شیادیه امروز در دنیا طب سوزنی الکترونیک ایجاد شده یعنی الکتروت هایی درست کردن که رو بدن که حرکت میدن یه نقاطی رو که میرسه میبینن این نقاط اختلاف پتانسیل الکتریکی و قابلیت هدایت الکتریکی متفاوتی داره این نقاط رو شناسایی کردن بعد دیدن که این نقشه 50 سال پیش خب پنجزار سال پیش این نقشه رو دادن خب اینا تا دیروز در متافیزیک بود امروز در فیزیک تا دیروز نقش انسان و ناظر در دنیای علم چیزی نبود در فیزیک در مکانیک نیوتنی جایگاهی نداشت. امروز میگن که ناظر تعیین کننده ساختار هستیه. تا دیروز متافیزیکی بوده همسو صحبتی. و از کردم خدایتون خیلی از مباحث دیگه همینطوری روز به روز داره از متافیزیک چی میشه وارد فیزیک میشه متوجه میشیم که نه مثلا امروز نقش شعور نقش شعور اینا دیروز اکس برداری شده حالا همین روز عکسبرداری شده تأثیرش رو ملکول آب دیروز اگر گفته میشد شعور مسلما تو این سی سال که ما گفتیم شعور تازه اخیرا عکسبرداری شد درسته یا نه بنابراین همچین چیزی نیست اینه که خدا اجازه بده توجه می کنید خدا اجازه داده بل اما فجورها و تقواها میتونه از این ور بر بری میتونه از اون ور بر بری اجازه داده کی گفته من اجازه نمیدم اگه اجازه نمیداد که دسترسی نمیشد دسترسی پیدا نمیشد این با ماست که از کدوم شبکه استفاده بکنیم دنبال چی باشیم اینا همه قابل کشف و بررسی و دسترسیه. خب بریم سراغ این ادامه بحث قبلیمون یه مطلب دیگر رو هم بگیم که سوالات مربوط به این موضوع رو اگر بود مورد بررسی قرار بدیم. یک بخش دیگه دلیل تاریخی این مسئله است. و انسان از یک جایی یک پارچگی ذهن خودش رو، برهم هم زده ذهنشو پارچه پارچه پارچه کردیم و اکولوژی و اکوسیستم رو و پاره پاره تیکه تیکه کرده ازش یه چیزا رو جدا کرده گفته اینو میخوام اینو میخوام اونو نمیخوام اونو نمیخوام در حالی که اکولوژی در همه سوا کردنی نیست و ما گفتیم که مثلا فرض کنید این توتی رو میخوایم این کرکس رو نمیخوام. و این نمی‌دونم اینو میخوایم اون عقربو نمی‌خوام در حالی که یکی از اینا رو نمی‌تونیم بذاریم کنار و خلاصه این پارچه پارچه کردن ادامه پیدا کرده و به تمام بخش‌های ذهن ما کشیده شده حالا وقتی که ذهن در پارچه پارچه قرار میگیره نیاز به صرف انرژی زیادتری هست مثلا شما وقتی میوه جدا کرده می‌خواید بخرید انرژی بیشتری صرف می‌کنید باید بردارید اینجوریش کنید اینجوریش کنید زیر روش کنید تا دونه دونه دونه دونه بعد باز میشه دوباره برمیگرده یکی دیگه این انرژی میقاره در هم اینجوری میکنه و دو تا چیت میکنه پات میکنه تا تمومش میره به خب حالا ذهن انسان درگیر بی نهایت اجزایی شده که همه اونا رو امتیازدهی کرده امتیازهای مختلف و حالا کار خیلی مشكله سروده از مرحوم سوراب سپری مسئله رو به خوبی میتونه به ما نشون بده و گوزد بکنه مروم سراب سپری میگه که من نمیدانم که چرا میگویند از پیوان نجیبیست کبوت از زیباست و چرا در قفس هیچ کسی کرکست نیست گل شبدر چکم از لاله قرمز دارد چشمها را باید شست جور دیگر باید دید و اله آخر خب در اینجا در واقع به ما نشون میده که ما با پارچه پارچه کردن و این انتخابی کردن همه چیز زن روه بردیم توی حالتهای باید صرف انرژی بیشتری می کرده. حالا هرچه صرف انرژی بیشتری کرده مدیریت داخلیش چی شده؟ ضعیفتر شده رسیدگیش به 100 تریلیون سلول ضعیفتر شده هرچی از این بر بیشتر انرژی صرف کنی از اون کم میاره خب اینم در واقع یکی دیگر از مشکلات که البته در ترم بعدیمون در مدیریت انرژی ذهنی مسائلی رو حالا دنبال میکنیم که در واقع بتونه این سیب انرژی و مسائل مختلفی رو روی این قضایی داشته باشیم خب حالا در چارچوب این موضوع باز اگر سوالاتی مطرح هست بتونیم پاسخ بدیم بعد ارتباط برقرار کنیم یه چند تا ارتباط تا پایان وقتمون داشته باشیم. منتها در هاشیه اگر سوالاتی هست سوالات رو دنبال بکنیم. میکروفون رو معبد بکنیم. سال در همه کالبوت همه اعضای وجودی با همدیگه در ارتباط هم. جلسات بعد راجع بقیه ماجرا با هم صحبت میکنیم. امروز راجع به این بخص صحبت کردیم و بعد راجع به دیگه هم صحبت خواهیم داشت. بله با هم تمام اجزای وجودی انسان با هم در ارتباط در واقع زنجیروار به هم چیه؟ متصله خب جارم دیگه سوال مدیریت سلول و بدن رو توضیح دادم که این بخش در واقع 100 تریلیون سلول رو زیر پوشش داره و در واقع شرح وظیفه سلول ها رو بهشون چیکار میکنه میده از همین طریق هم بود که بی و این مورد ها و اینها انجام شد از همین طریقه که در واقع دستور اشتباهی هم صادر میشه و خیلی از مسائل دیگه حالا درمانی که صورت میگیره توجه کنید یک بخشش اون کاری که شما در واقع انجام میدید یک بخشش اینجوریه که در واقع شما اینو کانکتش میکنید متصلش میکنید به هوش جمعی یک بخشش البته اینم به یک شک واسط میشه اونم به یک بخش اونم اونم همه اینجا واسط میشه مثل اینکه شما یک لپتاپ میخرید یک موبایل میخرید چیزی بعد می تو سایت کمپانی مربوطه و از اون سایت کمپانی برنامههایی رو روی این سایت مثلا لپ کامپیوترتون هرچی دانلود می کنید و آپدیتش تش می کنید. در این مورد این رو هم وصل میشه به اون شبکه به این هوش جمعی که صحبت کردیم وصل میشه برنامه ها رو چیکار میکنه؟ شروع میکنه به میزون کردن و روبرا کردن و تمام بخش ها رو کنترل میکنه لذا، اون اسکن هایی رو که شما شاید هستین یک بار اینجا مثل همین چیز میونه که استادنه تمام برنامه ها یه بار مرور میشه و برنامه ها میاد رو اینو یک بار میاره رو لذا اسکن های شما اینجا چی میشه؟ انجام میشه با مراجعه به حافظه سلولی بر حسب اولویت ها حافظه سلولی رو میخونه این سلول میگه من این بدبختیم بوده اون میگه من این بوده این میگه من اینجوری اون میگه تمام این رو،, میاره رو. و بر حسب اولویت اگر ما توش اختلال نکنیم توجه میکنیم اگه ما این دفعه نفریم وسط دکمه رو بزنیم برای این گفتیم خل اصلا برای این گفتیم مداخله نکنیم برای این گفتیم که نمیدونم امینا که یه دفعه نفریم یه دکمه رو بزنیم بذاریم کارش رو انجام بده و بعد میبینیم که حافظه سلو رو میخونه چیزا رو بازسازی میکنه و شروع میکنه به کار کردن و نتایجی رو که شما شاهد هستین در واقع بازیابی و ارتقاء کیفیت ذهنی و بعد و بخش‌های دیگه‌یه که حالا راجع به این موضوع صحبت کردیم جان کلام و آخر قضیه من می‌خواستم این موضوع رو خدمتون بگم که اینجا در ارتباط با اونجا کارهایی رو صورت میده و این مسئله انجام میشه الان ممکنه متافیزیکی باشه همون که بعضی دوستان اینجا اشاره کردن به متافیزیک بودن این مسئله و اینا ولی در از یه روزی ما که اینا متافیزیکی متافیزیکی نیست اینم خودش جز فیزیکه و الان ما به صورت متافیزیک نگاه میکنیم و به صورت معجزه نگاه میکنیم. موجزه معجزه اون چیزی که خارج از دو, دو تا چهار تا است هرچی خارج از دو, دو تا چهار باشه میگیم معجزه و الان میگیم معجزه شد ولی شاید پنج سال دیگه همین صحبتی رو که میکنیم از یکی از این کشورها یکی از این چیزها درد که بله ما همچین مسئلهی در رابطه با هوش جمعی همچین چیزی هست و بعد میشه جزء فیزیک مثل همین عکسبرداری که الان از این ماجرهای مولوکول آف شد و شعور رو و تاثیر شعوری رو چیکار کرد؟ اثبات کرد خب و در ته این سال همین صحبت ها به نظر می رسید اما الان ما یه قدم به زبان علمی این مسئله چی شدیم؟ نزدیک شدیم خب لذا ما خیلی چیزا رو به خاطر اینکه آگاهی لازم نداریم الان مسائلش ممکنه سقیل باشه سخت باشه ولی در درده خودش و با زبان خودش می بینیم نه همچین پیچیدن همچین خارج از دو, دو تا چهار نیست و برای خودش بیان داره و برای خودش علمیه خب یکی دیگه از ارتباطاتی که برقرار کنیم اگه دوستان سوال خاصی ندارن اینا ببینید اینها ببینید ما وقتی ما میگیم ذهن سال خوبی توجه بفرمایید وقتی ما میگیم ذهن ذهن از بخش متعددی ساخته شده ما به عنوان مثال سه بخشش رو اینجا آوردیم اصلا یکی از اون پردازشه که گفتیم امتیاز میده امتیاز میگیریم دام چیکار میکنه همین از بخش های مختلفی رو در واقع تشکیل میده خب اینو داریم، اینو, اینو داره اینو داره اینم داره و اینا طرز کارهاش رو تقریبا جدا جدا اومدیم چیکار کردیم بیان کردیم به عنوان سه بخش حالا سه بخش عمده و بخش های بر ایو اینها بسیار بسیار زیاد داره پس اینا عیزا این کالبود ذهنیه عیزای مهمشه البته جلسه بعد؟ نه ارتباط مصنقه ما الان توی مدت کمکان توی مسئله جسمی داریم کار میکنیم فاید میخوام ببینم اینا تست هستش که چون بحث همون عرفان کمال رو مطرح کردین بعد از این که همه مشکلات جسمی برطرف شد به چیز دیگه ای میخواییم برسیم بله این بازی تموم میشه همون یعنی بازی فیلی خب این بازی بله تموم. دیگه این بازی تموم چا میشه چا صحبتی در مورد بله مرم. بعد ترم دیگه وارد این میشیم که خب هوشمندی ثابت شد حالا خودشناسی خب خودشناسی از طریق این قضايا ها و چه کارهایی باید روی ما روی خودمون انجام بشه؟ میریم سر اصل ماجره در واقع این بازی فقط تو این ترم هست البته جز چیز ما خواهد بود ما میتونیم ازش استفاده کنیم همیشه همیشه همیشه ولی خب دیگه به عنوان بازی هدف نیست به عنوان یک هدف این وسط جایگاهی نداره درست شد صرفاً حالا بعدم هم بعد ها متوجه میشیم که کاربورت های خاصی هم از این قضیه کاربورت های خاصی توی این مسئله دوباره برای ما در عرفان هست اونا رو در ترمای بعد با هم بیشتر میتونیم مورد بررسی قرار بدیم ولی این بازی اینجا خاتمه پیدا میکنه و میریم سراغ مسائل و مباحث دیگه که صرفا به خودشناسی و ماجراهای خود مربوط میشه و شناخت عرفان یعنی اصلا خود عرفان چیه خب بریم سراغ ارتباط یه اسکن با نیروی کیهانی هم انجام بدیم اسکن با نیروی کیهانی خب دوستان دوباره طبق معمول تو این اسکن چی وارد میشه همون بحث کانال کانال یا چیزی که بود وارد میشه تا کجا میره چه کاری انجام میده درست شد خب انجام بدیم خیلی ممنون مشکر خب دوستانی که اسکن رو به داخل بدن متوجه شدن درشون رو بلند کنن بله خب یکی دو تا گزارش باز من مایلم بگیرم که دوستان بدونن منظور از این اسکنه چیه کی برای اون توضیح میده کدوم از دوستان برای اون توضیح میدن اینی که بله من دست چپم دوستان خوب بغط کنن یه به... چیزی گرمایی وارد بدنم شد بله کاملا اومد از طرف چپ بدنم تا نوک انگشت پام پردار خب پس متوجه شدین دیگه متوجه شدین که برود از اینجا عدد چپ وارد شد و بعد از این سم همجور تا پایین این... پام رفت بله از پای چپ تا پای چپ رفت. حالا چه کاری انجام شده بعدا ازشون گزارش بگیریم متوجه میشیم که یه سری بالاخره اصول برشه تو این حالتی که ما داشتیم تقریبا تو یه حد فاصله ای مثلا 5 سال در نظر بگیریم اصلا 5 سال به طاقف احساس نمی‌شد تو این 5 سال حالا یه احساس جریان برقی احساس میکردم بله من احساس میکردم صدا داره بله این حالا دیگه نمی‌دونم تو چه یا نه اصلا یعنی صدا بله. احساس میکردم دقیقا بود طاقم دقیق می‌افتاد بله کنم خدمتتون که مسئله‌ای اتفاق می‌افته ابتدا به ساکن این نیروی کیهانی که میاد اکسول های فیزیکی در مواجه با ما اکسول های فیزیکی ایجاد میکنه یکی از این اکسول های فیزیکی ممکنه که ما ببینیم که با یک محدود فرکانسی روبرو شدیم این محدود فرکانسی در یه جای نوره چندعب نور دیدن در این مواجه نور با نور مواجه شدن و نور دیدن و بعضی مقایین فرکانس در حدیست حد که میاد به سطح فرکانس شنیداری حالا در ترم بعدیم اون تو ارتباطات این موضوع شنیداری و تغییر فرکانس و طیف فرکانسی رو بیشتر اونجا ملموس میشه لذا اینجا در یک ای ما با فرکانسی روبرو میشیم که این فرکانس برای ما هم مفهومه خوب و ممکنه کسی دیگه ازش با خبر نشه دقیق می کنید ولی به هر حال در محدوده ما این اتفاق میفته و اون فرکانس روی ما کاری انجام میده مثل اصلاح فرکانس مولکولی سلول سلول مولکول داره مولکول فرکانس داره بعضی از مواقع مولکول سلول از فرکانس خودش چیکار میکنه دچار انحرافاتی میشه مسئالی براش پیش میاد که فرکانس مولوکولی سلول باید اصلاح بشین لذا این فرکانس ها در واقع میان و نقش اصلاح کننده ای رو اونجا چیکار میکنن؟ پیاده میکنن داید. داید. میتونه؟ بله میتونه اثرات فیزیکی رو داشته باشه خب اگر چیز من یه سوال بکنم بعد شما رو بکنین خب دوستانه که اومد این مسئله و گیر کرد یه جایی گیر کرد اونایی که متوجه شدن که این جریان در بدنشون ایجا گیر کرد خب دوباره اون مسئله رو داریم پیگیری میکنیم که در واقع اون گیر رو چگاه بکنه مرتفع بکنه و داره کار میشه درست یا نه داره کار میشه خب قبل از اینکه ارتباط دیگه برقرار بکنیم خوب سوال س... چرا این گیر کردن ها تغییر میکنه؟ ببینید مثلا روز اول که من این جایت پرگران کردم از موچ دستم بالاتر نمیرم بله. بعد از چند وقت خیلی رفت بالاتر بله. ولی بعضی وقتا دوباره میاد پایین بله. ببینید الان ما یه مدت تا این تسبیت پیدا میکنه ممکنید نوستان های داشت باشیم بعد شما امروز رو چجوری گذاروندین؟ دیروز چجوری بودین؟ مودتون چجوری بودین؟ خب یعنی ما اگر بخوایم وارد تفسیر شیم از اینی که شما به ما بگین دیروز چه جوری بودین تو کجا اومده امروز کجا آمده ما بهتون میگیم تو چه مودی بودین و مود شما رو میتونیم حس بزنیم که چه تلرانسی داشتین تو چه بازی بودین پاز مثبت منفی یعنی از همین آزمایش مون تا اینا یه چیزای بحثای مفصل پیچیده خاصی حالا شاید مثلا بعد تمام اینا روی نمودارها و گراپا و نمیدونم این حرفا پیاده بشه ولی الان بهش نیاز نداریم به این تفسیرها الان نیاز نداریم کل قضیه الان میخواهم ببینیم هست نیست یا بگیم هست یا بگیم نیست کل قضیه الان سر اینه وارد دیتیل و جزیات وجودی نه وقتشو داریم و این تفسیر گیج کننده است یعنی گیج میشیم ولی بتونیم یه چیز کلی رو نتیجه بگیریم خیلی بهتره. بقیه شما وقتی با افراد کار میکنید و یه مدتی میگذره انقدر تجربه الان دوستانی که مثلا معرفای شما هستن باشون صحبت بکنم میگن که تجارب جزئی بسیار بسیار زیادی به دست آوردن و در واقع در انسانشناسی کلی تجربه به دست آوردن اینا از همین مسئله که خود به خود تو تجربه ایجاد میشه خب <تصفيق> جا بعدش میدم خیلواند شما بعدش ارتباط برقرار کنی من امروز اولین جلسم بود که اصلا تجربه کردم این کلاس حضور داشتم این تجربه گفتیم که منطقه ممکنه که گیر کنه تا سمت قلبم اومد و از دربان قلبم خیلی شدید شد خب، ولی... خب این پس این اسگن اومد تا روی قلب بلد. پس روی قلب اسکن رو شروع کرده منظور ماه گیر یعنی این که اصلا به داخل نرسه همون جاها بین راه یه جایی نه تا قلب اومد ولی او. بعد از کات قط شدن قطع کردن ارتباط یعنی در تمام این طول مدت که شما صحبت میکنی احساس میکنم که در تمام بدن هم گسترشون داره ده کار ببینید اینه که ما قط میکنیم وقتمون محدوده میتونید وقتمون محدوده ولی اون الان داره کارشو الان داره حسش میکنین دیگه داره کارشو انجام میده این نیست که ما وقتمون برای محدوده میخوام یه دقیقه بعد که چی شد فرصت نداریم که حتا به دو سه دقیقه‌ام برسه وقتمون کمه ولی شما همین وقت برای ما کافیه که اکثریت بگن که آره متوجه شدیم نه متوجه نشدیم دیگه حالا اون نتیجه رو که می‌خوایم در واقع بگیریم اون یه سنگینی چیزیتون کفه دست واساس اون کار میکنه دیگه اون یه نیروی دیگه اون سنگینی که چیزی نداریم که وزنی نداریم داره کار میکنه خب حالا این که کار میکنه چی میکنه، چه کاره انجام میده اونا بماند دیگه بفرمایید بفرخشستر نان قبل از که تو این کلاسا بیام بعضی وقت اتصال برقرار بشه خواب زمان که بعضی هم سنگین میشد اینو خیلی تجربه کردم و برای خودم مثلا جای ساده بزرگه برای اینکه خیلی برای ملموس احساس می یک لحظه یک ضربهی به بدنم وارد میشه یا اینکه یک لرزشی از جایی میخوام بیفتم تکان میخورم یعنی خودم اون تکان رو احساس میکنم و حالا نمیدونم به خاطر تنیش های عصبی که مثلا در روز داشتم یا هم بحث اتصاله که مثلا خب هم وجودشه. خیلی این رو گاهی اوقات اصلا شد انقدر احساسم که به خوبی تکان بدنم و لرزش بدنم احساسم حالت حالا این دوستان گفت فرق گرفته که اینکا یه ضربهی به من وارد شد یه حالت لرزش در بدن ایجا میشه حالا من از شما سوال می‌کنم که شما تضادتون با بیرون از خودتون بسیار شدید هست یا نیست؟ منظورتون منظور کمیام واضح‌تر تضاد شما با بیرون از خودتون. یعنی, یعنی اخ... با هستی. تضاد فکری تضاد تضاد فکری تضاد چی میاد هر چی اسمش رو بذارید. خب... با بیرون از خودتون با هستی خصوصا زیاد. شما اگه هر... مستغشو بفرین راحتم میذارم جواب بدم. ببینید من جای تضاد چی به کار ببریم؟ نه نمونه های از تضاد مصادیقش درگیری ببرم. درگیری یعنی ببینید خب یه سلی مسائل و به تنش های روحی ممکن در طول روز وجود و های روحی و به صورت ببینید به صورت بیش از حد معمول خب بیش از حد معمول اینجوری درگیری و تضاد با بیرون از خود یعنی خب بیرون هستی همه چیز این چرایی ها چگونگی ها چرا چرا چرا و این تضاد بیر... با بیرون از خود اگه تضاد هم وجود داشته باشه ابحام میتوشه به شبه سرمی کنم حالا یه جوی جوابشو بگیرم حالا یا با مطالعه یا حلا. با صحبت بحث با منظور, اینه. من من اینا این... من اینا منظور من اینانیست منظور من اینانیست ای در ترم دیگه جواب بهتون میدیم خب نه من میخواستم فقط ارتباطی با این مسئله داره یا نه ارتباط تو با این مبنیسی که شما خوب خوب یا نه باید بحث ببینید ارتباط داره بدون ارتباط که هر چیز اینجا اتفاق میفته تصادفی تصادفی نیست که شما اونجوری بشین که تصادفی نیست الان میبینید که این همه اتفاقی که داره میفته به صورت تصادفی راندم نیست بنابراین حالا درگیر نشین فقط اینه که شما بدون این کار میشه و به دنبال این کاری که میشه شما بخشی از این ها و مسائلی که هست تقریبا براتون حل میشه تا ترم بعدی تتم سابی داره که اونجا با هم دیگه همه. این تطمئن سابو اونجا مرورش میکنید استاد این تضاد بفرق. یعنی چی یعنی اون درخت مثلا نابودش میشه چیه این تضاد درگیری با چی <تصفيق> بفرمایید <بفرق. بفرق. تصفيق> یه خورده بلندتر صحبت بکنید درسته از اون درسته شما بلندتر جلسه اول که به من تو کلاس حضور پیدا کردم تونستم ارتباط برقرار کنم خودارو شو و از مچ دستم پایینتر یعنی تا مچ دستم بیشترم بعد کم کم بالاتر رفت ولی هیچ وقت تا بیشتر از بازوم و این کتف هم بالاتر نرفته تا به بله. حال ولی این بار خیلی عجیب بود برام که تو دو تا دستم کاملا صدای قیجقیش احساس می‌کردم انگار حس که دیگه دری انگار داره مثلا باز و بسته میشه روغنکاری این... بوده دیگه <تصفيق> روغنکاری بره روغن میکنم بره آزماهاش هم نش... میکنن ببینن <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> این, صدا... این صدا نشونه چیه که <تصفيق> <تصفيق> امون بره اولین بار الان ارتباط رو میدم ببینید من توضیح دادم اینجا توضیح دادم که بعضی از کارهایی که روی ما انجام میشه وقتی میاد به ما میرسه به محدودهای فرکانسی تبدیل میشه و ما اون محدودها رو به صورت صداهایی میشنویم خب و در مورد شما همین بوده چیز دیگه ای نیست باستاد وقتی حرکت میزادن دستم و درست با حرکت دستم صدایی جات میشد اه... خب بعض روغن کاری بوده حالا اینو برحال توی همون رابطه هاست توی همون رابطه هاست که اصلاحات مولکولی صورت میگیره اصلاحات مولکولیه خب یه ارتباط دیگه برقرار بکنیم اینو روی پولاریتی روی اون، نیروی پولاریتی دستاتون به پاسیل ده پنو دستان ابن الدارت جو میگیرید ششم باد بسته خب شما دستتون مقابل همدیگه خیلی ممنون، مشکل خب دوستانی که متوجه شدن درشین بلند کنن بله بله خیلی ممنون، خیلی مشکل خب توجه کنین توجه کنین اجازه بدین ببینین با تنظیم تبادلات یونی و الکترونی میبینید که این میدان گسترده تر میشه چند نفر از دفع قبل گسترده تر شد اینو این آزمایش برین از آزمانتو در. بلند کنن خب این در واقع اون تبادلات یونی و الکترونی اصلاح میشه و به دنبال اون ما این مسئله رو متوجه میشیم خب فرق نمیکنه این حوزه هست حالا خواهشی که میخوام از دوستان داشته باشم اینه که تا جلسه بعدمون هم دوستان خلاصه تاشیه نباشند نباشن و تماشاگر نباشن بتونن تست بکنن کار بکنن تا جلسه بعدمون با دست پر تحریف بیارن یاری دارم که جسم و جان صورت اوست چه جسم و چه جان جمله جهان صورت اوست همه رو به خدا میزوریم خدا نگهدار. خیلی ممنون خیلی موسکر سپاس کزارم.